یکی از آن جمعه های کزای تولد ساریا بود وقتی امیر با محمد در این مورد صحبت می کرد که کادو چه چیزی تهیه کنند هرس دوباره توی وجودم جمع شد و فکم را به هم فشرد محمد قبل از اینکه دهان باز کنم سعی کرد سر و ته قضیه را هم بیاورد و جلوی حرف زدن مرا که احساس می کردم چشم حالتی درنده و خشمناک گرفته بگیرد سالها بعد فهمیدم که محمد چه عذابی کشید یک طرف قضیه دو دوستش بودند که هر دو را دوست داشت دلش میخواست به امیر در شناخت انتخاب و مصمم شدن در تصمیمش کمک کند و بارها گفته بود که را مثل زری دوست دارد و خب مسلم بود که میخواست مثل خواهرش ازدواج موفقی داشته باشد در عین حال میدانست که امیر در عین محبت به سریا تردید هم دارد، تردید به خاطر مخالفت مادر و پدر و شاید موقعیت خانوادگی سریا و محمد میخواست به امیر ثابت و تفهیم کند که کارش درست است. محمد میخواست برادر هر دویشان باشد، هم امیر و هم سریا و این کار سختی بود. طرف دیگر قضیه زنش بود که در عین حال خواهر امیر هم بود. یک زن لوس و نفهم که محمد می ترسید تمام رشته ها را پنبه کند. من با رفتار تند و نابجایم هم می توانستم میانه آنها را مخصوصاً با حساسیتی که سریا نسبت به دید دیگران نسبت به خانوادش داشت به هم بزنم و هم امیر را که خودش در تردید بود منصرف کنم. امیر را دوست داشت، تحسین می کرد و به او علاقه پیدا کرده بود، ولی مسلم بود طاقت تختعه و مسخره دیگران را ندارد و این چیزی بود که محمد می خواست جلویش را بگیرد تا امیر کاملا در تصمیمش مسمم شود. شاید ترس محمد از این بود که ای مثل ازدواج مهدی پیش بیاید، با این تفاوت که امیر هنوز مثل مهدی نبود، که به هر قیمتی این کار را بکند از طرف دیگر من می با بروز دادن قبل از موقع این جریان پیش مادرینها درد سر درست کنم و با مخالفت کامل خانواده من کار خراب بشود چون یا هم کسی نبود که به زور عروس ای بشود اینها چیزهایی بود که آن زمان کم و بیش، و بعدها کاملا درک می کردم. منتها آن وقتها حوصله فکر کردن به دیگران را حتی اگر برادرم بود نداشتم. برایم مهم نبود که سر سریا و امیر چه می آید. مثل احمقها برایم فقط این مهم بود که توی این جانب داری محمد گرچه برادرانه به سریا فکر می کند، برایش تلاش می کند و دوستش دارد. و این چیزی بود که من سرم نمیشد و نمیخواستم. آنها خلوت مرا، گوشه ای از فکر و وقتهای آزاد ما را میگرفتند و من این را نمیخواستم. بعدها وقتی یاد رفتارهایی که کرده بودم میافتادم چه حال بدی پیدا میکردم و چه زجری میکشیدم. از خجالت آب می شدم و دلم برای محمد که دیگر نبود آتش میگرفت. بعضی وقتها فکر میکنم کاش همان اوایل سرم داد زده بود و به جای مهربانی با خوشونت رفتار کرده بود. با کلی که تویش حرف حساب نمیرفت مدارا فایده نداشت. مدارای او فقط مرا لوستر و در راه خطایم پا پابرجاتر کرد. درست مثل قضیه امیر. همدلی و درکی که من باید برای برادرم داشتم او داشت. تازه گیر آدم زبان نفهمی مثل من هم افتاده بود. آن روزها لایق سیلی خوردن بودم. یک هفته تمام جانش را به لب رساندم تا قبول کردم بدون اخم و تخم هدیه را که چند جلد کتاب بود بدهم. و چندین روز بعد از دادن آنها باز خون به جگرش کردم که این کار مهم را انجام دادم. آن وقتها محمد با بدبختی میخواست از من یک زن فهیم و با شعور و اجتماعی بسازد. ولی خانم جون راست می‌گفت: آب آبدستی توی چاه ریختن فایده نداشت. چون من دریچه قلب و ذهنم را روی درک و فهم بسته بودم. زمان لازم بود که بفهمم تمام شوربختی ها، ناکامی ها و آنچه بشود اسمش را بدبختی و تقدیر و غذای آسمانی و غیر گذاشت در نهایت از نادانی و صفاحت سرچشمه میگیرد. و وقتی ضرر این نادانی چند برابر می شود که آدم باور نداشته باشد که نادان است. مثل من. آنچه مرا بدبخت کرد عدم درک شرایط و نادانیم بود و اعتماد مطلق به عشق محمد و مهر خانواده خودم و خانواده محمد و از همه نگاه کردن به ازدواج و عقد مثل میخی محکم برای اسارت محمد. به این ترتیب قهرهای ما طولانی و طولانی تر و بحث هایمان از بگومگو به دعوا کشید. و من مثل همه آدمهایی که زندگی زن و زنوی را به چشم میدان جنگ می‌بینند و سعی دارند نه فقط مغلوب نشوند بلکه حتما پیروز باشند و در این کشمکش گور محبت و عشق را با دستشان میکنند در دری که با دست خودم کندم سقوط کردم. چون نمیفهمیدم برای جنگ با مشکلات و ناخواستهها نباید زندگی زن و شویی را به جبههی دیگر تبدیل کرد. چرا که اینطور زورازمایی نفس آدم را می و از پا انگار وسط کارزاری گیر بیفتی که نه از دشمن مطمئن باشی نه از دوست. و دلت شور هر دو طرف را بزند.